زندگی محتیم. الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلّ الله علی سیدنا رسول الله. و آله طیبین و المعصومین و معصومین و لعت و دائمت و اللهم و فقنا و جمعی المشترین ورحمنا ورحمت که ورحمت که که راجع به بحث قنا بود قنا مندودن و عبارت مرحوم شیخ رو رضوان الله تعالی به اصطلاح خوندیم و متعرض عبارت ایشون شدیم و به مقدار به اصطلاح همین مقداری که توضیح این عبارت بشه به دعاین اندازه نه حالا هدف این, این بود که کل کتاب مرحوم شیخ خونده بشه از کنم که بر مطلبی که از کتاب شیخ خوندیم فقط چیزی که در اونجا حالا من سابقا یک جوری معنا کنم اینه این فقط یه توضیح خیلی اجمالی است. در اون تقسیم اقسام دنا مرحوم شیخ سه قسم رو بیان کرد یک قسم که صوت مجرد باشه یه قسمی که فقط به با آلت باشه و صوتی همراهش نباشه یک قسم دیگه هم این بود که صوت با آلت باشه مراد ایشون از اون قسم سوم که او همراه با آلات باشه مرادش این بود که مثلا با صدا مثلا تو نی بخونیم مرادش این بود مراد مخدومشه ما اگر نواز گوش داده بشه یه جوری دیگه من نه اینجوری این, این, این ولی من اینجوری ما نکنه به اصطلاح این بس سولج گفتین صوت باشه همراه با آلات یعنی که بربت و او دو اینها بزنن انواع تاره رو بزنن همراهش هم کسی بخونه حالا چون من اینجور خوندم آمین بخواهد تفسیه رو کنم اینکه حالا عبارت شیخ رو به اصطلاح جور معنا کردیم ما این جور گفتیم شیخ اونجور نوشتاریم با جمع بین هر دو چار تا میشه نه، تونهیم <متصفيق> چون تو مثلا یه جور خونده میشه به یک نهری حالا به هر حال چون ایشون این جور آورده من عبارت شیخ رو بگم اما اونی که واقع میشه در خارج آلت همراه با صدا این به اصطلاح محل کلامه حالا ایشون شیخ اینجور نوشته اشکال نداره این راجع به این قسمت یک مطلب دیگری که برای آهان خیلی به نظر من باید دقت کرد در به اصطلاح مباحث مطلبی بود که ایشون از کتاب کفایه سبزواری محال کرده بود مرحوم فازل سبزواری و خوند این عبارتش رو البته ایشون مرحومشه خوردود که فازل سبزواری کنموز فیلسن هده لم یو بعد بل صحیح. در این چاپی که از مکاسب شده در حاشیش بود که نه این مطلب در کتاب مرحوم سبزواری نمازه بعد گفتن نه آمده گفتن این عبارتش از حالا ما هم گفتیم نای آمده و نقل از اون حاشیه معلوم میشه که آمده بر حالا اونم تصحیح بشه که این مطلبی دوبومی که تصحیح از قدشتا یک مطلب دیگری که بود که این مربوط به مطلب میشه این دیگه مال اشکال نیست و اون اینه که در آخر عبارت مرحوم فازر سبزواری این طور آمده بود که اگر اجماع ثابت نشه در باب تعبیریشون این بود اگر اجماعی ثابت نشه چون احادیث ضعیف و سند هستن به احادیث عمل نمیشه و برمیگردیم به اسات الاباه این یک راهی است که الان چون متعارف شده دیگه اوترس بعد از ایشان و از بعد دیگه همین جایی میشه ما در مسائل به اصطلاح مقدار زیادی روایت داریم حالا فرض خواهیم به عنوان مثال به عنوان تعبیر آقایان اون روایتش هم ضعیف مثلا لیکن انصافا با در نظر گرفتن مطالب و شواهد بگیم آقا این روایت سندگی ضعیف است و همه را برگردیم به اصالت العباهه این خیلی مشکلی یک راهیست که متاسفانه الان بعضی جا پیدا شده و فوق العاده این مطلب مطلب غیر درستیست ارز کردیم ببینید که رو کنیم به طول کلی ما در مسائلی که در فقه وارز میشه اصل اولی رو بر این میگذاریم که تا جایی که میتوانیم شواهد اقام رو کنیم و به واقع برسیم یعنی قائل نشیم به انتداد واقع علف میتونیم ما شواهد اطمینان عرفی قابل قبول اقامه بکنیم تا به واقع برسیم نه اینکه دست به حجیت و مثلا چهارت حدیث صحیح یا صحیح نیست حتحال مقدور ما در درجه اول وصول به واقع در درجات بعد وصول به حجیت یعنی این مسئله حجیت یه مرحله بعدیه نه مرحله اولی و ما میتوانیم در یک مواردی بدون اینکه حالا سند هم صحیح باشه با مجموعه شواهدی که وجود داره در اونها به واقع دراسیم واقعیت محفوظه حالا واقع رو میتونیم به راحتی به اونها دراسیم مشکل خاصی نداره نمیخواد که حتما بگیم چون اینها سندهی ضعیفه به اصطلاح این مثلا این رو ما طرحش بکنیم و برگردیم به اساتید برای اولا من توضیح دادم وقتی که انسان این مسئله رو در کتب اهل و در کتب شیعه و در شواهد قطعی چه در دنیای عرب چه در بیرو دنیای عرب نگاه بکنه این جزء مسلماتی که مسئله قنا دارای سابقه بسیار طولانی در تاریخ بشره این نیست که این آوازخانی یا ملاهی یا لغ یا لعق یا مثلا رقص یک چیزی باشه که مثلا ما بخویم فقط لابلای 4 تا صفحه کتاب نگاه بکنیم این جزء مسلماتی که جزء به اصطلاح اینجور مسائل در یک مسائلی است که در تاریخ بشر سابقه داره و انواع جناها، انواع بهسا آداب و رسوم تمدن‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف راجع به مسئله به اصطلاح مثل غنا، هر مسئله اینطور نیست. ما موارد بسیار زیادی از این قبیل داریم که در فقه و در غیر اینها این‌ها سابقه دارند. یعنی این طور نیست که مثلا رضا از, از یک مسئله باشه که ما بخوایم مثلا چهار تا روایت رو در اونجا نگاه بکنیم و همون چهار تا روایت مثلا بخواییم این مطلب رو انجام بدیم این مطلب دقت بکنیم قناه مسئله است که و رخص و طرف و شواهد بسیار زیادی داره ما چند دفعه حال کردم قوم سمود تقریبا در همین محل مکه بودن شما مکه را در نظر بگیریم در جغرافی ها پس خواهیم دیوید بالا داریم و دیوید ست کنونت پایین به طرف یمن یعنی از به اصطلاح دریای سرخ دیگم کرد قوم سمود حدود هشتت سال بودن حدود 100 سال و خورده سال قبل از آمدن اسلام دیگه اینا منقرض شدن در آثاری که الان ما از قوم داریم و نوشته هایی که از اینها رسیده، به صورت گل به ساگل نوشته موجوده مجالس رقص و لعب و همه چیزایی که هست و چیزایی که الان نمیخوام در بکنم شو دیگه مناسب با ای مجلس نیست از قوم سمود به ما رسیده یعنی الان آثار موجود قبل از اسلام بوده یعنی اینطور نیست که خیال بکنید یک مطلب تازه‌ای یک مطلب اینها موجود بوده در خود مکه انواع به اصطلاح جنا و رقص و این شواهد موجود بوده در مدینه حالتش کمتر بوده اما خب در مکه بیشتر بوده این ها قفعی یعنی این ها جای شبه نداره که ما بخویم به روایت برگردیم راج به این مسئله در دنیای اسلام همین طوره در دنیا اسلام وقتی ما مجموعه روایات مجموعه شرحات و مجموعه اقوار و روایاتی که در کتاب قول خودشون درجیه که اونها مثل فرس این کتاب بخاری و غیر بخاری آمده اینقدر دیگه این بحث یاده قائل از علمای تراز اولشون اون تراز دومشون و شواهد فراوانی که گناه در زمان علمه ما مثل زمان امام حسن و امام حسین و, و, و از سجاد در مدینه فوق العاده رایج بوده من عرض کردم شواهد قطعی تاریخی موجوده این دیگه شواهد یک دو تا حدیث نیست شواهد قطعی تاریخی موجوده که مدینه در اون زمان مشهورترین شهر در غنا بوده هیچ شهری حتی شام با اینکه نزدیک روم و یونان بود و بنی اومدیه و با اون خباست هایی که اینا داشتن شام اون شهرتی رو که مدینه در غنا داشت شام هم نداشته تیجا عجیبین اشتهار غناده این هست در مثل مدینه هی جای بحث نداره یعنی کاملا این مطلب واضحه و روشنه اصلا نمیخواد دنبال روایت و سند روایتو اینقدر زیاد در زمان بنی امیه بعد لا اواش اواخر بنی امیه منتقل شد به شام و بعد خب زمان بنی ابباس زمان بنی ابباس زمان خود امام صادق سلام الله و بعد زمان موسی بن جعفر بعد زمان علی رضا بعد زمان علی حادی دیگه این زمانها شاید اصلا این تشاره در زمان بنی عباس مخصوصا از زمان حارون یک نحوه وحشتناکیه همین کتاب الاغانی چند جلده؟ همین جلده؟ این کتاب الاغانی الا ماشاءالله اغنیه هایی که خود اغانی سیصد و خوردهیه در اون زمان خودش و زمان هارون و اینها رواج داشتیشون آورده رو شاید برای شما آور بر باشه مخصوصا ای که از شعرهایی که خیلی در اون زمان رو اونا به اصطلاح انوزه عرب اغنيه میخوندن و آواز می‌خوندن شعرهای عمر ابن ابی است. این یک غزل سرای معروف هم فاصله ایام هست خیلی شعرهایی که یک معشوقه معین داره راجع به غیرم گفته راجع به عده از زنها شعرهای گفته خیلی شعرهاش البته قشنگ شعرهاش و خیلی در مسائل به اصطلاحمون مسائل خاص خودش شعرای خاصیه به هر حال این کتاب این عمر ابن ابی یک قسمت مهم از کتاب ارغانی جلده یکش مربوط با امروی نبی رویه است که خب ما همون قرن اول دوم دیگه ایشون خیلی هم شعر داره اون وقت یک شعرش رو که میاره خداهای رسا عبول فرجی اسمهانی باز برای یک, مثلا یک قذلی رو که گفته درباره یک کسی وقتی نگاه میکنیم خود این قذل در طول تاریخ ممکنه به 20 جور خونده شده به 20 آواز خونده شده این اوازی همه کیفی اورده من فلان مغنی این دروش خونده اصطلاح یکی من بلد نیستم اصطلاح خاص خودش فلانی با این دستگاه خونده فلانی همینج اسم میذاره یک قزل واحد راهشون حساب کنیم بالغی میذاره شاید 20 25 نفر به الهان مختلف و به کیفیت های مختلف این آواز ها رو خونده نه هم ضرب شد در تاریخ این دیگه بحث سند نیست این چیزی میگیم سر زلفی هست مدینه شهرت داشته بعدها بغداد شهرت داشت زمان اهل به ببینید دقت کنید و اهل سنت برای تروی جهنر سعی کردن به صحابه به رسول الله نسبت دادن سماع غنا. به صحابه نسبت بدن به تابعین نسبت بدن شماهی دوردن فلان فلان اسم بردن ادهی از تابعین رو یا از فوقه ها رو که قائل به حلیت قناع بودن به اینها نسبت دادن به ادهی سنگینی نسبت دادن چرا؟ چون هدفشون این بود که مثلا بگن این فینقسه اشکال نداره خب نقدی کردم نوشتن و با در خود کتب اهل سنت مثلا در بخاری که این دو, دو مسلماجه که در شیعه متأ جایز بوده از اول امیرالمؤمنین در بخاری نردونه حدیث مسلم هم نداره بخاری داره از حسن بن محمد بن حنفیه از امیرالمؤمنین پسر محمد که امیرالمؤمنین فرمود که ان رسول الله هر عمل متعه عام خیرا بتاش یعنی حتی آمدن در به قول خود در کتاب بسیار معروفشون نقل کردن که امیرالمؤمنین فرغوندر که متعه حرام است. حالا نقل کردن این مطلب رو. راجع به غنا هیچ کدومشون نقل کردن علیان یه هارم اجل سلام کنه. به خاطر اینطور نیست که ما اون سال که فهمیدین ما در مسئله غنا میتونیم به واقع برسیم احتیاج به حجیب نداره هیچ نفری از سنیشی سنیه ها نویشت ها امام حسن یا امام حسن یا امام مجلس حاضر شد بله اوچه به عبدالله بن جعفر نویشتن راست که اکتاب هاشون موردن توی من یادم میاد یک روایتی هم ما هم داریم الان مسترد نیست و اما عبدالله بن جعفر و لحب و سما که داماد هست دمیه شده. اما راجع به امام ما بله از امام سجاد اونم شیخ صدوق منفردن و مرسلن کسی دیگه نقل نکرده که یک جاریهی داشتن حضرت برای حضرت اشعار زغده اینا میخونده. که این غنا هم قطعا قنای لحوی نبوده ما دیگه نداریم برای امام باقر نقل نکرده برای امام ساده برای موسیقی جعفر خب خود حضرت رضا سرات الله سلام علیه بنا ولی احمد دیگه دیگرم ولی عهد آنها تو مجالس بنا حاضر شدن هیچ کسی این چیز رو نهار نکرد اون قصه معروف حضرت حادی با متوکل که در مجالس شروع بعض خم بعضاً به که شعر بخونن و شعرم برد نیتونیم چون قصه به غنه آمد که بعضاً اون شعر معروف باطو علاقه والله اجبال یعنی انسان وقتی نگاه بکنه با قطع نظر از با قطع نظر از روایات ما این در تاریخ اهل بیت گفته شده باشه که یک مجلس قناعی اینها حاضر شده هم اصلا وجود نداره با اینکه اینا آمدن مسئله به رسول الله نسبت دادن خیلی عجیبه واقعا اجایبه کاره به رسول الله نسبت دادن اما به امیر و نسبت ننازن به اهل بیت نسبت ننازن وقتی ما خود ما ده ها روایت در باب قناع داریم ده ها روایت حالا فرسون زیف و سنه. چه روایاتی که تطبیق کرده آیات مبارکه رو که مجموع سه تا آیه از تطبیق شده چه روایاتی که تطبیق نکرده حالا فرض زعیف و فن به اصطلاح این آقا ساز خود مرحوم آقا به اصطلاح صاحب ذخیره حدیث مثلا علی بن جعفر تصحیح کرده و اینکه در سنش عبدالله بن حسن که هیچ توثیقی نداره دروس کرده کسی که مبانیش در شناخت حدیث در این حد پیشون لا وجود این طور مثلا این حدیث صحیح ہے لا وجود الھا ہو لا نه تسی ہو یعنی یہ ہو کہ لا وجود تسی این دو پس یک مصادر اهل سنت دو روایات خود ما. سه صفر خطابات اصحاب تا قرن 11 اینا دیگه شوخی که بحث یعنی بنا نظر من اگر بنا بشه در جایی کسی با حال بگه ما در اینجا به حجیت بر نمیگردیم اینجا اصلا بر میگردیم به مسئله گرائی نه حجیت اینجا اصلا بحث حجیت مثلا خب از اولی که فقهای ما متعرض شدن تا قرن یازده هم حالا عبارت خود مرحوم فیض هم مختلفه تا قرن دوازده هم که فیضه حتی مثل مرحومه آیه مقدس اردبیلی با این که میگه من دربیلی پیدا نکردم معاذالک ایشون قائل به حرمته این معلوم میشه که مسئله این قائل همین کتابی که الان داره پیدا نکردم تو این کتاب میگم یادم افتاد ذکر صفحهشون یکجوری غیرطبیعیه اردودین بحث غنا رو که اگر نبود برم میگم بحث دیگه این کتاب نیلول اوتار با اینکه مفصلا چند صفحه نقل کرده در اقوال کسانی که میخواد بگه که قنا حرام نبوده مفصل خیلی ولی می خونن الان که پیدا نکردن فردا مجبورنشام بخونن با اینکه ایشون اورده معارف آخرش نمیشه احتیازی نیست که این کارو نکنید این مجلس رو الان حاضر نشید دقت میکنید با اینکه ایشون با اینکه ایشون هم به اصطلاح معروف زیدی نیست این من بعداً توضیح ارزم بخونم نيل و اوتان راست به عنوان قطب زیدیه چون قاضی القضاات یمن بوده در زمان زیدی ها شوکانی محمد نهلی شوکانی ایشون قاضل هم یمن بوده لیکن من از خود یمنی ها شیدم که ایشون رو سنی میدونن چیلی شیعه زیدی نمیدونن خود شوکانی رو و این کتاب نیلال اوتارش بعضی جهاش فوق العاده لطیفه این کتاب خودش شرح برای از کتب احرس سنت بنا منتقل اخبار و بسیار کتاب خوبید کتاب نیلال اوتار مخصوصا بعضی جهاش خیلی در استعاب و اقوال و خصوصیات جلو رفته تا نکنیم تا قبل بیفته. در ازم بالا؟ نه در ازم 26 مگا نمی‌کنند. 26 تا 28 شوند. نه من فکر می‌کنم 26 حالا حاله ما در این که به اصطلاح نه نیست اینجا نیست. این 260 این الان نیست اگر 260 جلد محشون من وقت نگاه کردم می جونستم 260 ماجا فیالات اللر بینیم اینجا که الان 260 نیست علم من چون می‌خوام از خود متنش خونده بشه میارم فردا باز میارم حالا این چون برام بود یه کمی سریع بخونید ببین به روایت خدا حالا فعلا امروز به روایت خودمون می‌خونیم فردا برمیگردیم به این کتاب بعد به روایت و احوال اهل سنت. یاد کردم که البته مرحوم جامع الاحادیث هم مرحوم ایوردی کتابشون اوردن و چون من دوستان کتاب وسائل بیشتر در اختیارشون هست من فعلا از وسائل می کنم یه مرزایش سابقا خوندیم که سابقا خوندیم سریع می کنیم دمیهش متعرض می شیم اما حضور که مرموم صاحب وسائل اگر آنون در این چاپ مرموم های ربانی جلد دوازده در این چاپ جلی به نظرم 17 باشه نیدونم من الان تو زهرم نیست در این چاپ جدید دقیقا در این جلده دوازدر در ابواب مایوکتسبو به در بل بفنیم بحث غناگاهی تو ابواب مایوکتسبو به مثل ما بردن و اهل مؤزم سنت در باب شهادات آوردن این نقطه دفت بکنیم بعد بخواهم یک نکته رو زن اینجا در عرض که خود همین که در ابواب شهادات آمده این یک نکته خاصی داره حس در باب حوا ما یکسابه یک مقدارش راجع به کسب مغنیه در باب 15 آورده راجع به بی مغنیه باب 16 آورده راجع به نائحه که نوه باشه این در کتب اهل سنت هم روایت دارن که دو تا صوت با هم مغрун شده که صوت قنار که صوت نوه. زنهایی که به واسه چیز مغن میکنن این در باب این سه تا بابی که ایشون اول آورده راجع به این موضوعاتی که بحث کرده اون وقت در باب 99 حالا چند تا روات که در ما آورده من که از چند ده روایت عمده روایات اون دو راجع به مغنیه هست. امده هست درباب و کتب مغنی است عمده روایاتش در باب 99 آورده در باب 99 باب تحریم قناه حتی تا قرآن و تحریمی و اجرتی و با قیبت و قیبت رو نمی برم اضافه کن در این باب 99 ایشون 32 تا حدیث رو ارده به خطر این که خیلی آدم واقعا بعد در باب سر باب تحریم استعمال الملاهی به جمعی اصناف ها و بیعه ها و شراعه ها تو این باب 15 تا حدیث ایشون نرفنده باب صد و یک باب و تحریم سما الغنا و الملاهی پنج تا حدیث ایشون در این باب نه یعنی در این سواب مجموعاً 50 تا حدیث ایشون آوردن اما که گفتم ده ها حدیث این دکرت که من هدفم این بود این راه راه درستی نیست ما بیم فقط احادی سنابیم احادی ضعیف پس برگیریم به اصال در با این مسئله سابقه داره، لاحقه داره، حساب داره، کتاب داره، صدها شاهد در کلمات اهل سنت هست، در شواهد تاریخی هست. این یک نوع به نظر من کملوتی است که متاسفانه الان هم ایده باش محتله هستند. خیال می‌کنه در هر مسئله همون باب نگاه می‌کنیم به ضعیف، همون شد برگردیم به اساطیر باهت. الان که ماکان این مجموعه اشاره که من اشاره آبره کردم به مجموعه روایا 12 حدیث هم در اینجا در اول آورده به حسب شماره که مراجع خود خودش تکراریه به حسب شماره ای که, را... خب ای که ایشون آوردن شده مجموعا 62 تا حدیث در این مجموعه پنج باب که مربوط به غناز در کتاب مسائل البته در کتاب جامع احادیث جای دیگه هم اگر احتیاج شود من بخوام چون دیگه این احادیث خیلی زیاده من گفتم به همین کتاب اکتفا کنم دیگه, دیگه احتیاج به خوندن کتاب وسایل نمیشه حدیث از باب پونزه چون این حدیث باب پونزه رو مرحوم فیض و مرحوم به اسطلاح خاضر سبزواری ارزن دلالت بر جواز غنا دو عدله گرفتن. ما اون حدیث رو در اینجا می‌خونیم. ارز کنم که حدیث باب پونزه از ابواب ما یک تصابه ما پس خیلن توی روایات احرس و وارد میشیم بعد هم کلمات احرسان که تیمزون برد میخونه بعد هم به اصطلاح معروف وارد بحث کلمات فقه ها و نتیجگیره نهایی این دارم این حدیث رو مرحوم شیخ کلینی در جلد پنج کافی هنه ادلت من اصحابنا هنه احمد ابن محمد که ظاهرا احمد ابن محمد ابن ایسای اشعری قومیز عن حسین ابن سعید ظاهرن که تا حسین سعید مراد باشه و احتمال داره همون نصفهی چون حسین سعید اصلاً ساکن احواز بوده. بعضا اواخر اوم قوم تشیفه بودن و همینجه فوت میکنن یک مقدار قومی ها کتابیشون از خودشون گرفتن کتابیشون انا علی ابن عبی حمزه انا عبی بصیر که ظاهرت میگن یحیی مراد باشه چون ابو بصیری که به اصطلاح یه بحث رجالی مفصلی ساجه به عدد عبی بصیر توصیقینای شدن همین جا هم ابرازی شیش خوندیم که ایشون یه ابرازی رو هالش معلوم نیست. بحثهای متعددی راجع به ابرازیات من هم وارد میشم. نه ابرازی خاص رجای زینگجوش نیست. یکی اینکه این, این دوتا ابرازی یکیش کور بوده و اون یحییاله ایش معلوم نیست کور باشه. پیش ما سابقه دیزلت بحثی کردم. در هر حال علی بن ابی همزة این دست یحییال یعنی آهدهش. آهنه که این دست کور رو میگیره نجای زینگاره. ولذا به قرینه علی ابن نبی حمزه اینجا یحیی مراده تا جد خود ابی بسیر این یحیی با لیس با اشتباهاتی که پیش آمده خیلی ما مشکلات در داریم داریم داریم. این حتی یقال و این مشکلات فقط مال بچه‌های رجالی نیست تا بزرگان ما مثل مرون صدور هم به نظر ما در اینجا مشکل داره توضیح اینا رو بزنین این وقتی که الان من نمیخوام وارد این بحث خب جهات خیلی ظریف و دقیقی که احتیاج به کارهای خیلی فراوان داره انعبی بسیق قال سلط عبا عبدالله اینم ما الان نمیدونیم یعنی من الان احزم میکنم چطور شده الان وسایل چاپ هست آن اگر کامپیوتر هست ببینیم این در برای چی ناری سلط عبا عبدالله یکی از به چون این حدیث هم در کافی آمده هم در تحضیب و هم در استفسار و در هر سه سلط عبا جعفره اگه یکیش بود این هم از اجایر به کاره نمیخوایم صاحب و وسائل چیکار کرده در سه تا مصدر این حدیث آماده در هر سه مصدر اباجعریه لكن فعلا که در کتاب وسائل الله چون مصیب مرحوم ربانی اصلا در, در درستیه تا ابا عبدالله آمده خدای ربانی هم در حاشیه اشاره کرده که فل مصادر فاز اباجعریه یعنی در هر سه مصدری این مصیب این هم اشاره کرده که در مصدر مسیح... اشاره نگردند اما این همینجزه اجایب کاره یعنی واقعا ما سردر نمیده وقتی من میگنم همچی خیافی موقعین تحنی بذاریم به صاحب وسائل واقعا نسخه ایشان اینقدر اختلاف داشته با نسخ موجود که در هر سمستر عبا جعفر باشه ایشون از هر سمستر عبا عبدالله بکنه خیلی عجیب علایانه کیف و ماکان در این روایت رو اینطور قال سالت عبا جعفر انکسب المغن قال علتیت خلو علیه هر رجال حرامان البته این مغنیات در اینجا چون یک مشکلی که بوده گاهی اوقات یک واقع خارجی منشأ تغییر میشه اکثر مغنیاتی که در اون زمان بودن کنیز بودن اما اینطور نبوده که هرم زنی بوده هره بوده اما قناه هم میکرده میخونده آواز خونه میکرده پول میگرده اما متعارف خارجی کنیز بوده یک مشکل اینه که آیا در اینجا مراد از مغنیات خصوص کنیزه یا اهمه شامل هره هم بشه قال علکی سوال در اینجا کس بر مغنیاته مرحوم شیخ این عبادتشون نخوندیم در مکاسب آخراش بعد از اینکه که کلماتش فیض و مرحومه صاحب کفایه میشه ایشون میگه که ملازمه هست بین حرمت کس و حرمت فعل چکاش بکنی ان کسب المغنیات سوال کسبه سوال خود فعل غنا نیست این از روایات مهمی است که مرحوم فیز ورده یا مرحوم مرحوم خراسانی آورده در حلیت غنا که جنا فینسه حلاله خوب دقت بکنی اما سوال غنا نیست سوال کسب مغنیاته. نه سوال از غینا پس وجه استدلال تلازم ما بین کس و خود فعل که اگر فرمود این کس حرامه یعنی فعل حرامه حالا شما موکنیز برای تلازم نزده اصلا تلازم محل کلام سوالی که در اینجا آمده انکس فقال علت علتیت خلالیه رجال حراما روشن شد فیض چی چیکار کرده فیز و مرحوم فرزادری میگن این که میگه الاتیات خد علیه الرجال یعنی خود جنای نفسه حرام نیست مغارم میشه با یک فعل حرام یاد یعنی خد علیه به کسی تصویرو که زن میگیره جایی که مردا میون ده جنای او گوش میکنن و آواز خوانی میکنه و مردا پول میدن اینا حرام است اگر کسر حرام شد یعنی این جنا حرام هست. پس سوال از کسب استدلال مرحوم فیض و استدلال مرحوم مرحوم سبزواری به تلازم ما بین الكسب و دام بین الفعل لذا خود مرحوم صاحب وسائل خیلی دفعه خیلی عجیبه صاحب گفت: گمته کسب المغنیه الا لزعف زعفل عرائز ای دالمیت خود علیه هر ببینید خود صاحب وسائل من چند بار عرض کردم عناوین حسابرسانش دقت بکنید کار خیلی ظرافت داره یعنی ایشون وقتی که رسیده به کس گفته الا لزفل عرائس یجوس کس اما در باب 99 باب و تحریم الغنا حتی قران تو تحریم الغنا که آمده دیگه قید نذره نگفته تحریم الغنا الا فی زفل عرائس خوب دقت کنید یعنی چرا ایشون دقیقه اون استثناء رو توی کسول مغنیه زده یکی از نکاتی که اخباری هم دانیه همینه به اسطلاح ما هم میگیم خیلی ملونوپتی از در این الفاظ و روایت میگن اون روایت که آمده در خصوص کسول مغنیه است. اما روایتی که در فعل غنا آمده توش قیل ما داره نگاه کنیم باب و تحریم الغنا، حتی تا فلقرآن و تعلیمی و اجرتی دیگه نداره الال زفل ارائس اون زفل ارائسه که استثنا کرد تو کسب مغنیه. این فکر بکنیم که آیا از این روایت تلازم در میاد به نمیان مرموم شیخ نخوندیم عباسش اون بودم همه عباسه نمیخونم آخر عباس شیخ در مکاسب این بود تلازم هست ما بین کسب مغنیه و خودفعل دقیق کردیم اما ساحب وسائل تو کسب المغنیه گفت الال زفل عرائس تو خود فعل غنا نگو، الا به زفر عرائز. تحریم تحریب غنا رو مترخیره این دقت به اصطلاح این علمای اخباری ما که سعی می از متون روایت به هیچ وجه خارج نشن ولتی ید خلاعاله هر رجال حرام ولتی تد آئل اعراس لیس بهی بأس اما با اون مغنیاتی که میان تو عروسی ها می عروسی ها هم قید نزده مطلق ورده خب مطلق به این معنا که شاید متعارف این بوده که تو اون عروسی ها فقط مرد, مرد زن بوده مرد نمی آمده اما این قید رو سال وسائل زد بیدید سال وسائل این طور داره. تحریم و کسب مغنیه، الا فل عرائس از آلمیت خلالی هر رجوع تازه تو عرائس هم به شرطی که مردها حاضر بشن. بگر کردی توی مجلس عروسی به شرطی که بگر زن باشه سال وثائل تو روایت نیامده و والذي تدعى اعراس ليس بهی باسو البته رواحم هم که بنا بر مشهور ذعیب علی بن عوی حمزه وثائینی تذویر شده بلکه تکذیب هم شده حالا عبارت تکذیب برمیگرده به جال کشی اینجا هم در جال کشی مثل همه جای دیگه است الا حدود داره یه مقداری کلمه‌مون مثلا عبارت چی حالا به هر حال ایشون حد اقلش اینه که توسیق نداره مضافن به این که روایات در لعنه و از راجع به مذهبش و رأس واقفیه و تعبیر به این که در آتش در قبلش در آتش قرار کسی زیاده و این جدو مسلماته البته بعضی ها اخیران نیم فکر که چون واقفی هم نیست و سقه هست از کنم که یه واقفی نبودم، می‌دونی که سیکی شهت تو سیشی نیست می‌شود رأس ولغتیه اگر ایشون برآم بود و واقفی نبودی، حرکت واقفی وجود نداشته. رأس ولغ علیه نبیاندی نیست. بله بعدیا به استر احترام کیشونم واقفی نیست خاندانیم واقعاً بدقوق خاندانداری کرد شاید چون آمرایی نه کلماتش رو یه شکل که و هوا قبول ندارد و گر و من ناز یشتاری لاه بر حدیث لیو زل عن سبيل الله این واقع و قول الله اگر در زیل حدیث باشه اگر در زیل حدیث باشه برای اون تلازمی که گفته شده خوبه اگر در زیل حدیث باشه با هو قول الله چون ما الان نمیدونیم با هو قول الله در زیل حدیث بودی یا نه چون انشاءالله خواهیم گفت همین روایت عبید بسیر آمده امغنی سلطی تضفل ارائس لا بعثه به کس لا بگی ابو الله نذره این متن دوم متن سوم اجر المغنيه التي تزف فلعرايس ليس به بسون و ليست دلتي يدخل عليها الرجال تو این متن هم قول الله نداره. و هر متن در کتاب کافی اومده لذا شما یه مبنی ما واضح شد خیلی در شناسی کار میکنیم هنوز روشن نیست که این آیه مبارکه در ذیل حدیث باشه اگر آیه در زیل حدیث باشه تلازم هم خوبیه. چرا؟ چون آیه مبارکه ناظر است به خود خناه مگر این که بگیم اماغ سرامالله در این آیه که ذکردم مرادشون از کلمه یشتری باشه و من ناس من یشتری لحول حدیث که بگم یشتری لحول حدیث شامن کس و مغنی هم بشه به بکردی و الله ظاهرش اینه که و من ناس من یشتری لحول حدیث تفسیر شده به غناب این معنا که یشتری چون می‌رفتن به اصطلاح مغنیات رو می‌خریدن حالا انشاء در زیل آیه که برسیم در وقت استدلال به آیات در استدلال به توضیح بیشتر اونجا عرض میکنیم فعلا اینکه این آیه مبارکه زیل حدیث ابی وصیر باشه خیلی برای ما وضوح نداد این حدیث مبارکه مثل که عرض کردم در کتاب حدیث ابی وصیر به متون مختلفش در مصادر سلاسه آمده. این متنی رو که ذکر کردم در دو تا آمده یکی کافی یکی هم شیخ توصی در تحضیب و استفسار مرحوم شیخ در زیل این حدیث در کتاب استفسار ترجمه هر هست که صاحب سا وسائل نقل نکرده خوب بود که چاب میکنم وسائلو زی... مرحوم شیخ توصی در کتاب استفسار جلد سه صفحه شست دو این حدیث اوورده در آتحیب رو بعد این طور نگه فلوجی حفیه اخبار ار رخصتو تقصد میکنیم فی من لا تتکلم بل اباطیل که غینایی که میخونه غیناهای مزخرف نباشه از کده منان یه مقدار جناهای معروف اون زمان شعرهای عمره ابن عدی ربیه بوده که واقعا اصلا از مسادیق شیع فاهشه هست به زنهایی که نامحرم بودن هر کوی عاشقانه گفت غزلهای عاشقانه معروف شعر عاشزان شعر قوی هم داره ها آدم متحتکی ایشون فی من لا تتکلموا بالاباطیل ولا تطلبوا بالملاهی تو ذوقونم که توی اعراس اباطیل نباشه شعر های باطل نباشه شعر های فی نفس خراب نباشه ولا تتکلموا بالملاهی منل ایقان او که میزدن بردتون و اشباه ها ولا به قصب نوشته لیکن مراد قصدی قویبه شبیه مثلا چوده که باش میزدن و, و غیرهی بل تکون ببینید ممن اینی که اگر یادتون باشه در استثناء عرائف مرحوم شیخ انساری هم فرمود که در شیخ مفید نیم در این به خاطر این نقطه اینه در استثناء عرائس هم که این روایت جزو استثناء عرائسه بل دقت بکنید تکون و ممن تزفل عروس به انشاد الشهر یک شعری مفصل در کتاب اهل سنت آماده که در بعضی کتاب مام شده که در شب به اصطلاح زفاف حضرت زهرا مثلا زنهای انصار چیم کنید آیشی چیم کنید حس سرن با الله یا جاراتی بله این شعر رو که چند تا شعر نقل کردن در کت ارسون سنت از کردن متاسفانه در بعضی ساثر ما آماده به انصافاً هر با ام جزی میگه اصلا خانه پیبر زمین مامون به هم چسبیده اصلا شطوری نبوده را برده نبوده این همه شعر خونده نبوده. و هر حال یک چیز عجی غریعشه ان، دقت میکنید اون هم تازه ثابت نیست این جز موضوعات مشئولات گرفته حما باریشونه بل تکون رو دقت میکن. تزف فل عروس به انشاد شعر فقط شعر بخونن تازه ده و نه و بربت و چی بیان تا رو تنبور و اینا نزنن این که شیخ انصاری دیگه قدما استثناء نکردن رو با اینکه این روایت بوده و لکی تدعا الالعراس لیس به بسون بخون ذهنیت روشن بشه که حتی قدما ی اصحاب ما اینطور روشن شد تا این حد بوده که حتی با اینکه که ظاهر روایت تد آئل ال در اعراس غالبا آلات و موسیقی ما هست شیخ توسی که مراده از تد آئل ال این یعنی فقط شعر بخونه آواز بخونه تازه اونم باطل نباشه حرفای بیهوده نباشه شعرهای آشغانه که مثلا تحریک آمیزه، میزه نباشه شعر بهار باشه شعرهایی که مربوطه به کلیات مثلا بس ج... مناسب با فرح باشه نه مناسب باز با لعب و لعه با اینها باشه بله خیلی بخوام ها... دقیقه رو دقیقه رو خود. بل تکونو میخوام بگم این روایت با این که اینجور آمده و سریح آمده باز معذالک میدیم که شیخ توصی که در بغداد و همون بغدادی که مرکز فساد و فساد بزنن شو جور بکن و مثلا اون زمانی که شیخ حسنی یک وضعیت قبل بشن داشت من میخوام وارد اون بحث بشم در تکون اینجوری من میگم که مرحوم سرزویری صاف میگه این ضعیف است و برمیین بر اساتید من دائما از کدم کسی که میخواد در فقه شیعه وارد بشه یک باید اون سیره اهل بیت رو در نظر بگیره دو روش فقهی فقهای اهل بیت رو این خیلی مهمه اون ارتکازاتی که فقه های اهل بید داشتن هم خود اهل بید و هم فقه های اهل بید ببینید بل تکون و ممن تزف فل عروس با اینکه ظاهره حدیث احراس دیگه بل تکونو و ممن تزف فل عروس به انشاد شعر فقط شعر بخونه و القول البعید من الفه چوال عباطی حرفای نامرغوب نباشه تا اما منع هذا هؤلاء اما یه ازين ممن يتغنين زنهایی که آواز میخونن قنا میخوانند به سایر انواع الملاهی با همین عود و دربط و انواع موسیقی اضافه شده فلا یجوز علی هان به هیچ وجه جایز نیست. شیخ گو مؤسسه هر است کلام شیخو فی یعنی با وجود روایت یه خط بخوام عرض بکنم یکی در کتاب علی بن جعفر بود مصادر خلاصه کتاب علی بن جعفر اصلا نیوردن یکی هم در روایات ابی این دو تا دلیل مهم هست که مرحوم سال ذخیره بود تمثال کرده خوب دقت بکنید چقدر اینا حساب شده بوده و من نینه به سایر انواع الملاهی فلا یجوز علی حال سوا ان كان في الارائف ام غيرها صلى الله عليه محمد وآله